دلیل اول انجام دادن آنها آسان است اولین جواب را از جیمران یاد گرفتم کارهای ای که به موفقیت منجر می شوند، انجام دادنشان آسان است اما انجام ندادنشان نیز به همان اندازه آسان است آسان است که روزانه چند دلار پس انداز کنیم انجام ندادنش هم آسان است انجام دادن پانزده دقیقه حرکات کششی یا یکی دو کیلومتر پیاده روی تند در هر روز آسان است انجام ندادنش هم آسان است قبولی در مقطع تحصیلات تکمیلی و هشتاد ساعت مطالعه در هفته به مدت چند سال متوالی برای گرفتن مدرک دکترا ممکن است آسان نباشد. اما مطمئنا آسان است که یک کتاب الهام بخش و متحول کننده مانند همسایه میلیونر یا بیاندیشید اندیشید و ثروتمند شوید یا جادوی بزرگ فکر کردن را انتخاب کنید و روزی ده صفحه از آن را بخوانید. فقط روزانه ده صفحه. انجام دادن این کار بسیار آسان است و انجام ندادنش هم بسیار آسان است. یادتان باشد به همسرتان بگویید که دوستش دارید و به او عشق میورزید و این کار را هر روز انجام دهید. چه کاری از این آسان با اینکه همه می‌توانند این اقدامات موفقیت آمیز را انجام دهند، اما خیلیها انجامشان نمی‌دهند و واقعا به همین دلیل است که از قلم انداختن آنها بسیار آسان است. نتیجه آمیز و غمانگیز ماجرا این است که انجام ندادن آن کارها زندگیشان را آسانتر نمی‌کند. به هر حال همه ما کارهای ساده را انجام می دهیم فقط افراد ناموفق آنچه فکر می کنند بی ترین و ساده ترین را هست انتخاب می کنند اما واقعا اینطور نیست اساساً همه ما هر روز اقدامات تقریبا مشابهی را انجام می دهیم قضا می خوریم، می فکر می کنیم، احساس می کنیم، حرف می زنیم و گوش می دهیم ما روابط و دوستی هایی داریم همه ما روزانه 24 ساعت و هفته و 168 ساعت وقت داریم و هر یک از ما این ساعت ها را با یک توالی از فعالیت و کارهای پیش پا افتاده پر می کنیم. دارندگان مدال طلای دوی ماراتن می خورند و می خوابند. افرادی که 15 کیلوگرم اضافه وزن دارند نیز این کار را انجام می دهند. کارآفرینان موفق می و احساس می کنند و با دیگران ارتباط دارند. کسانی که ورشکستند یا در خیابانها زندگی میکنند نیز این کارها را انجام میدهند. افرادی که درآمد زیادی دارند کتاب میخواند. افرادی که ورشکستند نیز کتاب میخواند. آنها فقط کتابهای متفاوتی را انتخاب میکنند. افراد موفق و افراد ناموفق. هر روز کارهای اساسی مشابهی را انجام میدهند. اما کارهایی که افراد موفق انجام میدهند، آنها را بالا میبرد و کارهایی که افراد ناموفق انجام میدهند، آنها را پایین میآورد و از دور خارج میکند. تفاوت در چیست؟ تفاوت در آگاهی و درکشان از برتری خفیف و نهفی بستن آن در زندگی و کارشان است. افراد موفق قدرت برتری خفیف را درک می کنند اما افراد ناموفق درکی از آن ندارند. چیزی که موجب موفقیت یا شکست می شود این نیست که آیا آن اقدامات پیش پا افتاده را انجام می دهید یا نه چون همه ما آنها را انجام می دهیم بلکه این است که انتخاب می کنید یک از آن اقدامات را انجام دهید به همین دلیل است که همه ما از توانایی لازم برای انجام دادن کارهایی که باعث موفقیتمان می‌شوند برخورداریم. همه ما می‌توانیم در زندگی برنده باشیم. بله، این شامل شما نیز می‌شود چون برتری خفیف همیشه عمل می‌کند، چه به نفع شما و چه علیه شما. برتری خفیف همین حالا نیز در حال اثرگذاری بر زندگی شماست و هر روز و هر لحظه نیز اثرگذار خواهد بود. هدف کتاب برتری خفیف این است که به شما کمک کند تا درک کنید که برتری خفیف چگونه هر روز، هر ساعت، هر لحظه و در هر گامی که برمی دارید و هر انتخابی که می‌کنید بر زندگی شما اثر می‌گذارد. هر کاری که برای ایجاد تغییر در زندگیتان نیاز به انجام دادن آن دارید، انجام دادنش آسان است. سالم ماندن، تناسب اندام داشتن و سرزنده بودن آسان است. به آوردن استقلال مالی آسان است، داشتن ای شاد و زندگیی سرشار از دوستیهای عمیق و معنادار آسان است. موضوع فقط مهارت یافتن در انجام دادن کارهای پیش پا افتاده است. اقدامات منظم کوچک و سادهی که اگر در طول زمان به طور مداوم تکرار شوند به دستاوردهای بسیار بزرگی منتهی می شوند. البته انجام ندادنشان هم به همان اندازه آسان است و آن اشتباهات ساده و به ظاهر ناچیز در تصمیم گیری ها که در طول زمان مرکب میشوند شوند فرصت های موفقیت شما را از بین میبرند. این انتخابی است که شما هر روز و هر ساعت با آن مواجه هستید. یک اقدام ساده و مثبت یا یک اشتباه ساده در تصمیم گیری. انجام دادنشان بسیار آسان است. انجام ندادنشان نیز به همان اندازه آسان است. دلیل دوم، نتایج آنها نامشود است. دومین دلیل افراد برای انجام ندادن آن اقدامات کوچکی که منجر به موفقیت میشوند، این است که آن کارها در همان ابتدا به موفقیت نمیانجامند. آن قورباغه بیچاره از دست و پا زدن در خامه دست کشید زیرا تا جایی که می توانست این کار را انجام داده بود اما هیچ تأثیری در او نداشت حداقل نه آن تأثیراتی که او می توانست ببیند و البته مشکل همینجاست کارهایی که در دراز مدت موجب موفقیت می شوند به نظر میرسد رسد که در کوتاه مدت اصلا تأثیری ندارند یک سکه یک سنتی که دو برابر شده یک سکه دو دو است. اگر هر روز به جای اینکه یک قهوه گران قیمت بخورید دو دلار کنار بگذارید و آن را پسانداز کنید در پایان هفته فقط چهارده دلار خواهید داشت. این دقیقا همان روشی است که مادرم را به یک میلیونر تبدیل کرد. با این حال، بسیاری از مردم این کار را انجام نمی دهند چرا که وقتی پسانداز می کنید یک میلیون دلار را در مقابلتان نمیبینید. نتایج بسیار دور از دسترس و نامشهود هستند واقعیت همین است مگر اینکه چشمانتان را به لنزهای برتری خفیف مجهز کنید آیا شخصی را میشناسید که روزی یک لیتر روغن گیاهی یا نیم کیلو کره بخورد آیا کسی هست که بگوید کلسترول خون من زیر 239 است باید آن را به بالای 400 برسانم هنوز خون در تعدادی از رگهایم در جریان است بهتر است مطمئن شوم که آنها نیز بسته میشوند. البته که کسی این را نمیگوید. پس چرا اینگونه عمل می کنیم؟ شما میدانید که باید چه چیزهایی بخورید؟ همه ما میدانیم؟ میوه ها و سبزیجات تازه، کرب و هیدرات ها، قللات کامل، گوشت لخم و بدون چربی، گوشت ماهی و مرغ بیشتر و گوشت قرمز کمتر. شما این را میدانید، من نیز میدانم. همه ما از این موضوع آگاه هستیم. پس چرا هنوز بسیاری از ما هر روز بیرون می رویم و چیزبرگر رو زمینی سرخ کرده می زیرا همین امروز ما را نمی کشند. اگر یک ساندیوید چیزبرگر بخورید و بلافاصله فاصله دوچار حمله قلبی مهلک شوید، آیا بار دیگر به چیزبرگر لب می زنید؟ من که شک دارم. ممکن است 20 یا سی سال طول بکشد اما وقتی که اثر مرکب تمام آن غذاهای پرچر به مسدود کننده اروق را جمع ببندید سرانجام قلب بیچاره و خسته شما فقط تسلیم می شود و از کار می افتد. سپس شما نیز از کار می و می میرید. درست آسان است اما درست غذا نخوردن و ادامه خوردن غذاهایی که سرانجام ما را می نیز آسان است زیرا آنها همین امروز ما را نمیکشند. این فقط یک وعده قضای مزر و پرکالری نیست، بلکه هزاران وعده غذایی مزر در طول زمان است. خوردن یک همبرگر فقط یک اشتباه ساده در تصمیم گیری است و نخوردن آن یک اقدام ساده مثبت. مسئله این است که خوردن آن همبرگر همین امروز شما را نمی کشد، اما وقتی که این کار را بارها و با بارها در طول زمان انجام دهید هم می‌تواند شما را بکشد و همین کار را خواهد کرد اما نه در همان ابتدا نخوردن همبرگر همین امروز وضعیت سلامتی شما را تغییر نمیدهد و زندگی شما را نجات نخواهد داد اما اگر بارها در طول زمان تکرار شود میتواند زندگی را نجات دهد و این کار را خواهد کرد مشکل اینجاست که این اتفاقی است که در آینده رخ میدهد و امروز آن را نمیبینیم چرا تمرین دوچرخه سواری را پشت گوش میاندازید زیر آسان است اگر امروز ورزش نکنید آیا شما را خواهد کشت نه البته که نمیکشد شما میدانید که برای سالم ماندن خوشاندام بودن و داشتن عمری طولانی چه کارهایی باید انجام دهید؟ باید قلبتان سه بار در هفته و هر بار به مدت 20 دقیقه کمی بیشتر از حد طبیعی بتپد. شما این موضوع را میدانید. من نیز میدانم. همه آن را می دانند. انجام دادنش نیز آسان است. اما انجام ندادنش نیز آسان است و اگر امروز فردا یا پس فردا این کار را انجام ندهید، ناگهان نمی میرید و ناگهان ده کیلو اضافه وزن پیدا نمی کنید. این اشتباه ساده در تصمیم گیری وقتی که در طول زمان مرکب شود، سلامتیتان را از بین میبرد، اما بلافاصله این کار را انجام نمیدهد. این موضوع درباره سلامتی، تغذیه، ورزش، عادات مالی، دانش، ارتباطات، زندگی زناشویی و سلامت روحیتان صدق می کند. این موضوع درباره همه چیز صدق می کند. یک اقدام برتری خفیف که تضمین می کنم زندگی شما را دگرگون خواهد کرد، این است. هر روز فقط ده صفحه از یک کتاب خوب را مطالعه کنید. کتابی در جهت بهبود زندگیتان. اگر امروز ده صفحه از یک کتاب خوب را بخوانید، آیا زندگیتان تغییر خواهد کرد؟ البته که نه. اگر امروز ده صفحه از یک کتاب خوب را نخوانید، آیا شیرازه زندگیتان از هم میپاشد؟ بدیهی است که نه. با اطمینان به شما میگویم که اگر با خواندن روزانه ده صفحه از یکی از آن کتابهای خوب موافقت کنید، پس از مدتی تمام دانش مورد نیاز را برای موفق شدن به آن اندازه‌ای که همیشه میخواستید به دست می آورید مطالعه روزانه ده صفحه کتاب مانند آن سکه یک سنتی در طول زمان مرکب خواهد شد و درون شما یک بانک ده میلیون دلاری از دانش به وجود می آورد اگر این کار را به مدت یک سال ادامه دهید سه هزار ششصد و پنجاه صفحه یا معادل حدودا دوازده جلد کتاب از مطالب متحول کننده زندگی را مطالعه خواهید کرد آیا زندگیتان تغییر می کند؟ کاملا بدون شک اما مشکل اینجاست که حالا و قبل از اینکه به آینده برسید در روز اول از هفته اول همه آن چیزی که میبینید فقط راهی به سوی آینده است زمانی که یک انتخاب درست میکنید نتایج آن را همین امروز نمیبینید در جهان امروز که مردم تنها با فشردن یک کلید به نتیجه دلخواهشان میرسند این موضوع یک معزل است ما دوست داریم که نتایج را ببینیم و انتظار داریم که همین حالا آنها را ببینیم. اما موفقیت اینگونه به دست نمی آید. موفقیت تحقق تدریجی یک هدف ارزشمند است. تدریجی به این معنی است که موفقیت یک فرایند است، نه یک مقصد. موفقیت چیزی است که شما به تدریج و در طول زمان تجربه خواهید کرد. شکست نیز درست همانند موفقیت تدریجی است. در حقیقت، تفاوت میان موفقیت و شکست آنقدر زریف است که شما نمی توانید آن را در طول فرایند ببینید یا تشخیص دهید. موفقیت واقعی اینگونه ساخته می شود. وقتی که شما نتیجه کار را می بینید، کار واقعی خیلی وقت پیش انجام شده است. وقتی به نقطه‌ای می رسید که هر کسی می‌تواند نتایج شما را ببیند و به شما بگوید که چه انتخاب خوبی کرده اید و به پشت شما بزند تبریک بگوید و بگوید که چقدر خوششانس هستید، از آن تصمیم مهم برتری خفیف که قبلا گرفته اید خیلی گذشته است. و به احتمال زیاد، وقتی که شما آن تصمیم را می گرفتید، هیچ کسی جز خودتان متوجه آنها نبود، حتی اگر شما نیز قدرت برتری خفیف را درک نکرده بودید، خودتان نیز متوجه آن ها نبودید. دلیل سوم. آنها ناچیز و بی اهمیت به نظر می‌رسند. سومین دلیلی که بسیاری از مردم در تمام عمرشان به نحوه عملکرد برتری خفیف در زندگیشان پی نمیبرند این است که گویی آن کارهای کوچک مهم نیستند. خب، یک روز باشگاه نرفتم. یک روز که چیزی نیست. Hey, این فقط یک ساندویچ چیزبرگر است. این همه حیاهو برای چیست؟ تفاوت بین موفقیت و شکست خیلی چشمگیر نیست. در واقع تفاوت بین موفقیت و شکست چنان ظریف و جزئی است که بسیاری از مردم آن را نمی‌بینند. این افراد ممکن نیست بفهمند که دارند از فلسفه خاصی پیروی می‌کنند، اما در واقع اینطور است. آن فلسفه چیزی شبیه این است. کاری که الان انجام می‌دهم واقعا مهم نیست فهمیدن اینکه مردم چگونه به این درک از زندگی میرسند خیلی سخت نیست من آنها را سرزنش نمی کنم. کاملا قابل درک است موضوع این است که این فلسفه درست نیست حقیقت این است که کاری که شما انجام میدهید مهم است کارهایی که امروز انجام میدهید مهم هستند کارهایی که هر روز انجام میدهید مهم هستند افراد موفق کسانی هستند که میدانند انتخابهای کوچکشان مهم است و به همین دلیل انتخاب میکنند تا کارهایی را انجام دهند که در آن لحظه به نظر میرسد اصلا تفاوتی ایجاد نمیکنند آنها بارها و بارها آن کارها را انجام میدهند تا اینکه اثر مرکب عمل کند. این کارهای کوچک که موجبات موفقیت شما را در زندگی فراهم می کنند و سلامتی، شادی، رضایت و رؤیاهایتان را تأمین می کنند کارهای ساده، جزئی و پیش پا افتادهی هستند که هیچکس آنها را نمی تحسین نمی کند و حتی توجهی به آنها نمی کند آنها همان کارهای هستند که وقتی انجامشان می دهید، اغلب احساس می کنید که اصلا هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند. کارهایی که انجام دادنشان به طرز خندداری آسان است، اما انجام ندادنشان نیز به همان اندازه آسان است. کارهایی که در ابتدا اصلاً به نظر نمی رسد که نتایج و پیامدهای مشهودی داشته باشد. کارهایی که آنقدر ناچیز به نظر می رسند که احتمالاً نمی توانند مهم باشند، اما مهم هستند. کارهایی که وقتی آنها را به مصابح رخدادهای مجزا بررسی می‌کنید، به نظر می‌رسد که اصلاً هیچ گونه تأثیری ندارند، اما وقتی که در طول زمان مرکب شوند، به موفقیت فوق‌العاده‌ای منتهی شوند. مثالی از تجربه خودم را برایتان بیان می‌کنم. نمونه‌ی موفقی از اقدامات پیش پا افتاده. پیش از این کمی درباره شبکه مردم برایتان صحبت کردم. همان شرکت پیشرفت شخصی که چند سال پیش تأسیس کردم اجازه بدهید ادامه آن داستان را برایتان تعریف کنم ما سرانجام با شرکت بزرگتری با بیش از یک ربع قرن قدمت ادغام شدیم این ادغام شامل ادغام همه‌ی نیروهای فروش هر دو شرکت بود و یک موقعیت جالب از برخورد دو فرهنگ بسیار متفاوت را به وجود آورد خط محصول کاملا متفاوت بود خدمات حقوقی در برابر آموزشها و مطالب پیشرفت شخصی حتی مهمتر از این موضوع تفاوت فرهنگ های دو گروه بود نیروی فروش شرکتی که با آن ادغام شدیم یک گروه بسیار بزرگ از افرادی بود که در هر کاری که انجام میدادند کاملا سازمان یافته موفق و عالی اما کاملا راکد و بی‌تحرک بودند یا میتوان گفت کار؟ بسیاری از این افراد ده 15 یا 20 سال یا حتی زمان بیشتری را در آن شرکت بودند و در حدود 80 درصد از نیروهای آن شرکت تازه تأسیس را تشکیل می‌دادند. 20 درصد بقیه هم ما بودیم، تازه واردها. فرهنگ گروه ما کاملا متفاوت بود. افراد ما نه تنها در رابطه با این محصول سازمان یافته و موفق نبودند، بلکه اساساً در این زمینه هیچ گونه تجربه‌ای نداشتند. اما ما چیزی داشتیم که آنها نداشتند، فلسفه برتری خفیف. ما به سرعت مفهومی را توسعه دادیم که به آن ده تعهد اصلی می گفتیم. فهرستی از اقدامات اساسی که افراد می با انجام دادن آنها موجب پیشرفت کسب و کارمان شوند. کارهای کوچکی که انجام دادنشان آسان بود و انجام ندادنشان نیز به همان اندازه آسان بود، کارهایی که به نظر نمی رسید انجام دادن یا انجام ندادنشان واقعا تفاوتی ایجاد کند. کارهایی که اگر انجامش میدادید حتی هیچ کسی متوجه نمی شد. کارهایی که به معنای واقعی کلمه پیش پا افتاده بودند. اگر درست پس از ادغام دو شرکت از کسی که آن وضعیت را میدید میپرسیدید چه اتفاقی رخ میدهد میگفت درست است که آنها فرق می کنند، اما خیلی طول نمی کشد که این افراد جدید خودشان را با آنها وفق می دهند و راه و روش های مرسوم انجام دادن امور در اینجا را یاد می گیرند. این پیشبینی کاملا منطقی بود، محافظ کاران همه جلسات و آموزش ها را کنترل می کردند. در واقع آنها همه چیز کسب و کار را کنترل می کردند، اما این چیزی نبود که اتفاق افتاد. گرچه گروه ما یک چهارم آنها بود و هیچ کنترلی بر آموزش‌ها یا جلسات شرکت نداشتیم و همچنین هیچ تجربه‌ای درباره آن خط محصول نداشتیم و کاملا تازه وارد بودیم اما چیزی داشتیم که آنها نداشتند. ما اقدامات منظم ساده و روزانه خودمان را داشتیم. همان ده تعهد اصلی. بعد از گذشت پنج سال نسبتها تغییر کرده بود. حالا 80 درصد از نیروی فروش شرکت آن دست از اقدامات ساده روزانه را پذیرفته بودند، زیرا دیده بودند که تازه واردان بی تجربه با عمل کردن به آنها به موفقیت می رسیدند. همین دوره به این دلیل که نیروی فروش شرکت قدرت آن اقدامات مکرر روزانه را درک کرد، فروش سالانه شرکت از حدود 70 میلیون دلار به بیش از 400 میلیون دلار رسید. فروش دو یا سه برابر نشد بلکه بیش از پنج برابر شد. داستان‌های شخصی از خوانندگان کتاب والری توماس، یدون، ایالت پنسیلوانیا چند سال پیش دخترم دوچار بیماری بدی شد و مجبور بود که 6 یه هفت داروی مختلف مصرف کنه. مصرف این داروها باعث شد که اضافه وزن خیلی زیادی پیدا کنه. بعد از خوندن کتاب برتری خفیف بهش پیشنهاد دادم که هر روز از دوچرخه ثابت استفاده کنه تا به کمک اون مقداری از اضافه وزنشو کم کنه. اولا فقط میتونه سه دقیقه رکاب بزنه که خب به نظر می رسید اون خطر کمه که هیچ فرقی نمیکرد رکاب بزنه یا نزنه. اما اون به تلاشش ادامه داد و خیلی زود سه دقیقه به هفت دقیقه تبدیل شد بعد 8 دقیقه بعد از یه مدتی هم تا اونجا پیشرفت که میتونست 15 تا 20 دقیقه رکاب بزنه. یک سال بعد از اینکه اون رکاب زدن رو شروع کرده بود ناگهان 15 کیلوگرم از وزنش رو از دست داد یا حداقل اینطور به نظر می رسید که اون تمام و اون وزن رو ناگهانی از دست داده اما به هیچ وجه ناگهانی نبود این قدرت برتری خفیف بود فقط 15 دقیقه در روز لورا رِیچینز مسا ایالت آریزونا من در هفته دوم از برنامه تمرینی جدیدم بودم که خوندن کتاب برتری خفیف و شروع کردم. تا اون موقع تو انجام دادن تمرینام 20 صبات بودم و یه برنامه رو بیشتر از دو هفته ادامه نمیدادم. اون برنامه خستم میکردن و حوصلم و سر می بردن. یه شب از همون شبایی که به تازگی خوندن کتاب رو شروع کرده بودم دیر وقت به رخت خواب رفتم و به خودم گفتم که فرد و صبح تمرین نمیکنم. سپس ناگهان فکری ذهنمو مشغول کرد. این یه انتخاب ساده است که من هر روز انجام میدم و تفاوتی رو تو موفقیتم ایجاد میکنه. با این فکر، صبح روز بعد بیدار شدم و تمرین کردم. حالا تو هفته شیشم هستم، به جنگ تمنای صبحگاهی منو خسته کنن عاشقشون هستم. در حقیقت با رضایت و خوشنودی در انتظارشونم. قبل از این هیچ وقت تمرینامو اینقدر ادامه نداده بودم و واقعا شگفتانگیزی که من چقدر احساس متفاوتی دارم. نکات مهم فقط پنج درصد از مردم به سطحی از موفقیت و رضایت که انتظارش را دارند دست می آبند. بقیه آن 95 و پنج درصد یا شکست می خورند یا به کمتر از انتظاراتشان دست پیدا می کنند. تنها تفاوت در برتری خفیف است. راز موفقیت آن 5 درصد در اقدامات پیش پا افتاده و کارهای آسان است که هر کسی می تواند انجام دهد. افراد به سه دلیل این کارهای ساده را به طور مداوم انجام نمی دهند 1. در حالی که انجام دادنشان آسان است، انجام ندادنشان نیز آسان است دو، در ابتدا هیچ نتیجه ای را مشاهده نمی کنند 3. آنها ناچیز و بی اهمیت به نظر می رسند، اما در واقع مهم هستند